دوره بسم الله الرحمن الرحیم بنام الله که بخشای اندفاع با رحمت است القارعه آن کوبنده ی ویرانگر ملقارعه چیست کوبنده ویرانگر و ما ادراک بالقارعه. و تو چه دانی که کوبنده ویرانگر کدام است یوم ما یکون روزی است که مردم چون پروانه‌ها پراکنده و تبون المنفوش روزی است که کوه ها از هم گسیخته چون پشم زده شدند فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ اما آن کس که کفه ترازوگش از عمل کرده خوب سنگین است فَهُوَ فِي راضیه در یک زندگی پسندیده به سر میبرد وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ وَأَمَّا آن کس که کفه ترازوگش از عمل کرده خوب سبوکه است فَتْ مُهَاوِيَة جایگاهش هاویه است و ما ادراک ما هیا تو چه دانی که هاویه چیست لاون حامی. آب سوزنده است راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم کاری از مؤسسه قیامبر مهر و رحمت سالان نورو آلیه و آلیه و سالان